بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوندی بی اندازم حبان نهایت باره قسم به روشنایی چاشتگاهان و به شب هنگامی که آرام گیرد که پروردگارت تو را ترک نکرده و بر تو خشم نگرفته است و بیگمان برای تو آخرت از دنیا بهتر است و بزودی پروردگارت به تو چیزی را انایت میکند که خوش نوچه آیا تو را یتیم نیافت و برای تو پناه داد و تو را سرگردان یعنی به اطلاع از احکام شریعت یافت و ره ساخت و تو را نیازمند یافت و بینیازگردانی پس برای یتیم قهر مکن و بر سایل بام مزند و نعمت فروردگارت را بیان کن یعنی آن را به دسترس همگان قرار بدی.